ایشم مدام است از لعل دلخا کارم به کام است الحمدلله ای بخت سرکش تنگش به برکش گه جام زر گه لعل دلخا ما را به رندی افسانه کردند پیران جاهل شیخان گمراه از دست ظافت کردیم توبه و از فعل آبد از تغفر الله جان آر چه گویم شرح فراقت چشم یو صد نم جان یو صد کافر مبینات این غم که دیده از قامتت سر و از آرزت ما شوق لبت بورد از یاد حافظ درس شبانه ورد سرگاه